بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب من صنع إليه معروف فليكافئه حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرح به لمولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه فإنه إذا أثنى فقد شكر وإن كتمه فقد كفره ومن تحل بما لم يعطف كأنما لبس ثوب يزور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نوا دو چوارمین باب از ابواب صحیح هد مفرد امام بخاری رحمه الله گفتش باب من سن علیه معروف فلی فلیکافئه کسی که در حقش احسان میشه در حق اون کسی که احسان بهش کرده اونم احسان بکنه خوبی بکنه حداقل جوابی پاسخی بده نسبت به اون احسانی که در حقش اون شخص انجام داده 157مین حدیث حدیث جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من علیه معروف اون در روایت فلیجزئه من سنع علیه معروف کسی که در حقش خوبی نیکی احسانی شد جزاش رو بده پاداشش رو بده, بده پاداش اون شخص, اون شخص اون شخصی که بهش خوبی کرده چطور پاداشش بده هدیه بهداد هدیه‌اش رو بهش برگردون یا یه هدیه چیز دیگه بهش بده پاسخ خوبی رو بهش بده خوبی در حقت کرده فئن لم ما نداری که پاداشش رو بهش بدی هدیه کادویی به داده تو نمیتونی کادش رو بهش برگردی یا چیز دیگه بهش بدی که مقابل اون باشه علیه از علیه به بخوبی یاد کنه یا حالا اینجا به طور عام اومده ثنا ستایشه ثنا دروده حالا هرچند که بیشتر ثنا به معنای ستایش میاد که اینجا دو, دو تا چیز رو دربر میگیره یک سپاس و شکر چنانچه در فاتحه داریم که زمانی که بنده میگه الحمدلله بعد میگه الله میگه جل وعلا وقد اثنى علي عبدي بعد از الرحمن الرحیم میگه اثنى علي عبدي یعنی سپاس مر بندن به سپاس و ستایش مر بندن به جواب از شک بالاتره اینجا این ثنا این ستایش بینیکی یاد کردن با دعای خیره یعنی مجرد پاسخی در مقابل اون احسان نیست که مثلا شما کسی بهتون یک کادوی بده بعد بگه تشکر نه این فنا نیست این یاد نیک نیست این به نیکی یاد کردن و به نیکی پاسخ دادن نیست به نیکی پاسخ دادن چی اگر اون کادو رو جایگزین بکنی همراه اون یاد نیک دعای خیر براش بکن این فران است دعای خیر کردن برای طرف مقابل فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَ عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ وقتی تو ستایی آفرین بهش بگی چنانکه در بعض از روایات تفسیر این فران اومده اینجا جواب تو مده نیمده که این ثنا چی بگه جزا الله خیر بارک الله فیک نفع الله بک نیمده اینو همه جزء ها و ها هست بارک الله فیک چون همه دعای خیره ولی خب در روایتی دیگه در سنان ترمزی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایان من صنع ایلهم معروف فقال لفاعله جزا الله خیر فقد أبلغ في الثنا کسی که در حقش احسان بشه در پاسخ و نحسان بگه جزا الله خیر میگه بهترین سیغه ستایش را به کار برده چون دعای خیره. هم تشکره و هم دعای خیره. الله جزای خیره را بده. میگه فقط شکرها. این شکرشم هستین. این تشکر ازشه. تشکری که در قبال اون ستایش دعا بیاد. این شو تشکره. و این کتمه فقط کفره. اگه کتمانش بکنی نگی تو کفران نعمت کردی. فقط کفره من تو کفران نعمت کرده. و من تحل بما لم یعطا فکا انما لبسه ثوبی زورن و من تحل بما لم یعطا قبل ما داشتیم اشاره که کسی که لباسی مال خودش نباشه بعد افتخار بکنه که چنین لباسی داره خودش آراس کرده با لباس دیگران این فروشی مثل کسی که لباس کسی را دوزی باشه و بعد بپوشه و به دروغ بگه که این لباس منه. حالا لباس زور میخواد، لباس غصبی باشه، میخواد لباس دوزی باشه، میخواد قرض گرفته باشه. فکر کنم لباس ثوبه زور مثل کسی که دو تا پیراهنه دو تا پیراهنی را به دروغ بر بکنه. دو تا پیراهنی که مال خودش نیست، ادعا بکنه که مال خودشه یا وانمود بکنه که مال خودشه. چرا گفته شد دو تا لباسشون عرب وقتی که لباس میپوشند دو تا لباس یک لونگی ازاری بود دور کمرشون و یک ردایی که قمیسی که بر روی آن این لباس عرب بود وقتر همین فوبه اومده دوتا لباس و اینجا هم دوتا دروغه يعني. هم کبر و غرور و اون فخفروشیش از یه طرف یک گناهش و یک گناه دیگرش هم دروغ یعنی دوتا گناه با هم دیگه جمع شده شاید هم چندین گناه با هم دیگه در یک عمل جمع بشه این مسئله درسته که مسئله حسی براش زده شده اون اصل سبب ورودش زنیه قبلا بیان کردیم زنی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و میگه هوو دارم درسته که مثلا جلو اون هوو بگم شوهرم این برم خریده اون خرید صورتی که شوهرم نخریده برای که بخواد حالا هووی خودش رو تحقیر بکنه یا بخواد فخ فروشی بکنه در مقابلش یا الی آخر از اون طبیعت و سرشتی که در ما هست از اینکه خودمون میخوام همیشه برتر جلوه بیمی خصوصا این حس تو زنا بیشتر هست حس تکبر و فخ فروشی و غرور عجب. ما مونث زنا اینطوری اند هیچ وقت زن زن دیگر از خودش بهتر و برتر نمیبینه مردا شاید مثلا ما کسی را بر خودمون ترجیح بدیم بهتر بدونی ولی زنانا سرششون اینه طبیعتشون اینه حتی بر مادر خودشون حتی خواهرشون تعجب میکنید مادرن و دختران آبشون تو یک جوب نمیره دختره شوهرش ازدواج کرده حبورده رو سرش سر جاش. اون کسی که آشوب میکنه کیه دختره نیست اون زنه نیست مادر اون خانمه است داد و بیدار و انقلاب و معددی میفهمن پس الوی خبیره جر و دعوارا مادر بپا میکنه دختره سر جاش نشسته میگه مادر تو نمیدونی من راضیم نه تو نمیدونی تو خاری تو بدبختی این از هم بحث درک ها طرف مقابل تو درک ها بده اون مادر اون مادر خانمه این نظام و سیستم فطریشه یعنی این چینی خلقت شده وقتی که این چیزو در کردی برات راحت میشه به یک مادر احترامش، نگه دار، سرش بوس، هرچقدر بده بیرا بد گفت، آخرش یک بوسی برپیشانیش بزن، آروم میشه. زندگی رو اینه، انتو تجامل ناس تک سیبرالله هم، مجامله بکنی با نیک سخنگویی و خوب سخنگویی، ازترازی میشن مردم، مردم روی خوش بدنشون میدن، ولی که نگر تو بخوای جواب بدی، جواب حاضر باشی، نه اون دودش تو چشم خودت میره و چیزی که رب داره توی همین قضیه ازدواج اون مادر خانم فضل بگردنه داره مادرته جای مادرته دخترشو داده بهت بعد زنم گرفتی میخواد جلوت فرش قرمز بندازه یا گر رو سر دو پاشه و بریزه مادره هرچی باشه سانع معروف در حق تو اون پدر خانمت اون مادر خانمت حق دارم بگردنه منسون عیره معروفون فلیوجزه جواب خیر بده بهشون بس تا وا با باید اونا رو ستایش میکنین با اون حرف نی که رفتار خوشد بگی جزاکم الله خیر حد اقلش این حد اقلش که میگه رسول الله صلی الله فا و یجد ما یجزی مالی پولی نداری پاسخ اون احسانشون و خوبیشون رو بدی چیکار کن با زبان تداخلاقت شکر ازشون بکن با گفتن جزاک الله خیر او جزاكم الله خیر بس همینا همین دعای خیرت برات این راه زندگی یعنی این منشه که باید هر مسلمان روی اون باشه و این خودش کمک میکنه به استقرارش استقرار زندگیش استقرار نفسیش دلخوشیش زیبایی زندگیش اب عبید قاسم نو میگه از جمله کسانی که در این حدیث وارد میشن اهل تصوفا لباس چی بهش میگن لباس دربیشی بر تن میکنن برای اینکه وانمود بکنن دربیشن برای اینکه بگن آقا ما اهل دنیا نیستیم ما یه سری کارها هست عمدیه یعنی میخواد نشون بده که اهل زهده اهل براهه ولی در دل خواهی از چیه؟ از،, از حب دنیا از حب تملک نمیذاره کسی نفس بگشه خوصا این قضیه پیش میاد در سروتمنده یا در حکام در اینا بیشتر پیش میاد ایه طرف لباس توازع برتن داره نماز وقت در سر صف اول نمازه ولی که نمیذاره تو بازار کسی جلوش قد علم بکنه کسی بیاد مثلا رقابتی باش بکنه یا مثلا همسو باش باشه تو تو, تو اون تجارت نه جایی که میتونه زر میذاره که هبو رو سرش نه نیاد تو اون تجارتش اون کارش یعنی این نظام مافیا بازی تو هر بازاری هست خصوصا بازاره کلان حالا میخواد ماهی باشه حالا میخواد میوه باشه یه هایی هستن که میخوان زیر دستا رو نذارن که جون بگیرن پا بگیرن و به بقیه تو سری بزنن خب این تظاهرش به اون سنت و اون پایبندی به دینه داره تظاهر میکنه تظاهر به صلاح دین داری میکنه ولی در باطن دیندار نیست در باطن دنیا داره دینداری دنیا داره دنبال دنیاست دنبال مفعت دنیاشه یعنی من تجربه خودم بوده خیلی ها تعجب میکنم نمازشون صف اول ول نمیشه ولی از سود بانک میخورن طرف رفته خونه اجاره بگیره ازش میگه باید رهن بدی بود 100 میلیون بذاری که خونه رو بهت رهن بدم خب راه حرامه میگه من کار دارم به حلال حرام امروز همه جا این ربا و این سود بانکی و اینا هست خا چه کار بکنی زندگی رو همینه ایران اینطوری تورم هست ایران فلانه همش بحث های امروزی هست از تورم از این جور مسائل بس حقیقت زهد و ورع در ادعا نیست در شعار نیست بلکه در عمله اصلا در عمل دیندار باشه متواضع باشه نه در ادعا ادعا بکنه ولی که در عمل اینطوری نباشه نمیشه مسئله اخر که داره به این حدیث یکی از شما حالا پیش ملها بیشتر پیش میاد تاجری بشه اعتماد میکنه پول میده مسجد بسازه تاجری بهش پول میده زکات رو توضیح بکنه یا صدقهش رو این تاجره تو اون منطقهش، تو اون شهرش، روستاش، تو اون محلش حکومت میکنه با ساختن اون مسجد یا با اون پول زکاتی که به دستش میاد تو مسجد هرچی من گفتم مسجد من ساختم تو نساختی کی گفته تو ساختی پول تاجر داده پول کسی دیگه داده خیر کسی دیگه هست نه مسجد من ساختم خب تو چی کاری بودی؟ این پول از کجا آوردی؟ حکومت میکنه با اون پول تاجر این به مال مال خودش نیست. داره حکومت میکنه با مال دیگران حکومت میکنه با پول خیر دیگران پول زکاتشون پول صدقهشون انگار که پول خودشه به هر کسی خاص بده به هر کسی خاص نده و این گاهی تو رئیس و رؤسای خیریه پیش میاد مریزه، طرف اومده هزار درد و بلا و مصیبت داره فقیره بهش کمک نمیکنن طرف کامیون داره تریلی داره دست زن و بچهش پر از طلا ولی چون آقا طرف واسطه داره یا همون پارتی تو انجمن داره یا پسر و پسر و پسر دایی یا بالاخره یک ارتباط خانوادگی برای کوچکترین مریضیش دست جیبش نمی کنه میره از انجامن خیریه میگیره و این زیاد پیش میاد و این زیاد پیش میاد بعضی‌ها سیر نمیشن و ما هم که مسئولی اگر مالی به دستمون سپرده شده مسئولی در مقابل اون مال که به اون کسی که مستحقشه برسونیم و این چیزها هست که در این حدی شما از آداب میخونید ادب مفرد. فرد باید از خودش شروع بکنه اون آداب متحلی بشه و اون اخلاق و خوی خودش را بر اون آراسته بکنه آراستگی رو اینه نمکن شما یک زاویه رو گرفتید لباس المتشبعه به معلمی وطان یک قسمت زاویه لباسه ولی هدف اون لباس نیست هدف اون قلبته و لباس التقوى ذلك خیر لباس التقوى اون جامع قلبت اون مهمتره اون لباسه جایی ما هنر پیشگی میکنیم نقش متقیان را عدا میکنیم ولی متقی نیستیم نقش آدم دیندار را دلسوز دین را بازی میکنیم ولی دلسوز نیستیم دیندار نیستیم از الله نمی ترسیم در خلوتمون اینها تزکیه نفسه. اینا اصلاح نفسه تحذیب نفسه و یک از صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم که بانوان یک رسول بهش معذب شده اونها یوزکیهم اونا را تزکیه تزکیه چی؟ یعنی این که اونها را رو آداب اخلاق نیک آراسته بکنه وزیفشه و اینجا هم رسالت رو شما میبینید تزکیه نفس اصلاح نفس بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسددون قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمشی عن مجاهد عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من استعاذ بالله فاعیدوه ومن سأل بالله فاعطوه ومن اتى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافئتموه 158 من حديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما قال الرسول صلى وسلم فرمودن من, من السعد بالله فاعيده تراب خذا پناهم بده پناه بهش بديد امر فاعيده پناه بهتون گرد کسی پناه بهش بديد ومن سأل بالله خدا قسمت میدم هیچی ندارم بخورم شام نهار یا لباس یا یتیمی دارم فعطو بهش بدید ازتون تقاضا کرد ندارم درست نم ندارم فعطو اگر قسم بهتون داد اگر قسم خورد، والله من ندارم فعطو بهش بدید امره و من اتا ایلیکم معروفا فکافئو مس حدیث قبلی کسی در حقتون خوبی کرد پاداشش بدید فیلا ایلم فدعوا فدعو چیزی چی های خیر برای شروع کنیم همون جزاکالله خیلی که داشتیم که بهترین پاسخ حداقلش اقلش کفتن جزاکالله خیلی حتی یعلم ان قد کافه اتوموت اینکه بدان تو سپاسش رو به جا وردی او اون عمل خیلی که در حقت انجام داده تو پاسخش دادی یا بر بگرده به خود شخص اینکه یعنی زمیر تو حداقل راحت بشه از اینکه که اگر چیزی نبود که پاداش اون خوبیش رو بدی با دعای خیرت پاداشش دادی فقط یک مشکلی هست اینجا تو قسمت اول حدیث تو شرح ما لازم داریم؟ آیا هر کسی از متقاضا کرد با نام الله قسممون داد یا قسم خورد با نام نام الله را وسط کشید نام خداوند یک را وسط کشید آیا ما باید بریم یعنی این ام برربه فعیید و همش امره بر وجود یا نه در حدیث دیگر با این لظذیم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم يقول فأخبركم بشر الناس منزلته من اللي باترين أفراد كاش قاسي باترين جاي قهره دار النز الله جل وعلا قلنا نعم يا رسول الله قلت مقرري يا رسول الله قال الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطيه وذروته لا يعطيه حديث صحيح والبنيام تعسي كذا والبنيام يقول حديث سكاس فوائدش إني إني كإنسان بنام الله شيء جز مرضنا خاها بنام الله شيء از مردم خاها الذي بالله العظيم. نام الله را میاره نام عظیم الله اون الله که آفریدگار مردمه که اسمش باید اجلال بشه تکریم بشه با نام الله اونم با این وصف عظمتش الله العظیم ازت به با این نام الله میخواهد ولی کسی بهش نمیده این بدترین و پسترین شخصی هست از لحاظ منزلت و جایگاه نزد الله قسم میخوری که ندارم نمیتونم از رفت زندگی بر نمیام آب و غذا و نونم ندارم قسم میاد میکنی ولی با این وجود کسی کمکت نمی کنه این یک وجه که, که حرامه شخص میدونه که چنانچه البانی رحمه الله اشاره میکنه میدونه نمیده کسی بهش ولی هم نام الله را یاد میکنه این اسم الله را تعظیم نکرده جایی که میدونی اسم الله تعظیم نمیشه نباید اسم الله را بیاری چون از حق اسم الله این بود که نامش شده اون حاجتت براورده بشه این یک وجه وچه دوم این که تو قسم میخوری که نداری ولی که به تو نمیدن چرا؟ چون اونها از تو میدانن چون دارایی داری چون توان مالیت میرسه حال روزت آدم فقیری نیست بیکار و بیپول نیستی میدونن مردم که تو داری ولی مردم بهت نمیدن ولا یعطی به یعنی با نام اون الله بهت, بهت چیزی نمیدن این آدم یعنی این یک از بدترین انسان ها ننظر شخصی که قسم یاد میکنه با نام الله ولی مردم بهش نمیدن. این وجه دوم. وجه سوم الذي بالله عغضیم ولا عیور به کسی نام الله را میاره ولی کمکش نمیکنن میشه مثلا پیش میاد اون شخص رفته پیشه کسی که ناتوانه میدونه اون شخص هم نداره یا تو دست جیبت خالیه. قسم بهت میده که کمکم کن تو هم نداری دست خالیه. دست خالیه نداری خودت نداری الان اینجا کی مقصره کی بده که کارش شر و کی جایگاهی بری داره اون مسئول یا سائل سائل جایی هم مسئول مقصره طرف و نیاز داره داره قسم بهش یاد میکنه حالت چاره. در توانش هم هست ولی که با وجود آم نام الله هم براش میاره ولی بای وجود نمیده این شخص هم مضمومه در این حدیث وارد میشه امر رسول الله صلی الله علیه و اجابت نکرد رسول الله سلام میگه فاعیدو فاعطو نمیده من میکنه میدونم طرف دارم. میدونم محتاجه ولی که نمیده اینجا این شخص مقصره این شخص اسم و نام الله را تعظیم نکرده. خب این خاصه وقتی خاصه دنیا باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلام کرده از اینکه سائل نام با نام الله تکسب بکنه و لقمه نونشو در بیاره با نام الله واسطه قرار بده این نام الله برای اینکه مردم بهش بدن رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایند لا یسالو بو وجه الله الا الجنه یعنی نام الله و وجه الله کسی جز بهش از الله چیزی دیگه نه چیزی دیگه نخواهد با وجه و نام الله چیز جز بهش خواسته نمیشه پس انسان نام الله را یاد نکنه در در در برابر خواسته های دنیاویش این از پیام های این حدیث از پیام های این حدیث اینی که انسان با توجه به حدیث قبلی که گفته شد اگر کسی ازش مالی یا غذای خاص مکلفه که در حد توانش اون شخصی که با نام الله ازش خواسته یاری بکنه و واجب اون در حدی که توان داره اما اگر توانش نمیرسه مکلف نیست چون الله جل و علا ما را مکلف نساخته در اون چیزی که توانمون نمیرسه لای کلف الله نفسن الا وسعها. فا این لم بعد از این دعا يعني این چنین برداشت کردن بعض از ظلمان حتی یعلم ان قد کفعتم یعنی فدعو له این دعا را تکرار بکنید بعض از ظلمان این برداشت کرده فدعو له دعا بکنید تا یعنی دعا تکرار بشه تا اینکه بدونید طرف مقابل ازتون راضی شده و مكافایه شو دادید یعنی پاداششو دادید پاداش اون دا خوبی احسانی که در حقتون کرده و بعد اینجا که اشاره میشه که اون حدیث اشاره میشه حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می کنه اذا دعا دعا ثلاثه و اذا سال سال ثلاثه رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که دعا می کرد سه بار دعا, ميكان. ميكان. دا دا دعا ترف رو تکرار یکی از سنت‌ها هست علما اشاره می‌کنند در شرح این حدیث که اگر دعا کردید می‌خواید طرف طرف مقابل رو راضی نگه دارید سبار عند تكراركم تكراركو على وهمون سيغي و سيغاي مختلفة ديغاني بيش ازافيكم بيقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا بيش بيقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونفع بك وإلى آخر إنسان در حد استطاعتش جواب النيكية مع دمره ميدة فالباب قال المؤلف رحمه الله باب من لم يجد المكافأة فليدعو له حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت نعنی نسین رضی الله عنه ان عن المهاجرين قالوا یا رسول الله ذهب الانصارو بالعجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم و عليهم به نوید و پنجومین باب از زباب و مفرد امان بخاری گفتش باب و منلم یجد المکافه فلید عله نمیتونی پاداشو اون کسی که در حقتون خوبی کرده بدید برش دعای خیر بکنید چنانچه در حدیث قبلی داشتیم حدیث این صدر پنجوانو انس <متلاح> رضی الله عنه میگوید که مهاجرین اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و از باب گلهای گفتن هرچی عجب انصار بردن ما هجرت کردیم عجر هجرت ما رو دارن ما فلان کردیم عجر هر کاری کردیم اونا صدق گرفتن هدفشون آخرت بود عجب هم هموغمی باشه و ما عجب هموغمی داریم شتان بین و والثریه زمین تو اسمو فرق تفاوت در نیت ها و در قلب ها یعنی هر کاری انجام میدن آخرت و حساب و کتاب و میزان و ترازو همه جلوه چش خودشون الان آیات ترازی و میزان و حساب و کتاب و بعید و بهش و جهنم میخونی انگار که طرف از خودش مطمئنه که این حساب دیگه الان رد شده ازش اصلا ترازوی خوبی ها در کفه حسناتش ترجیح پیدا کرده سنگینی کرده از خودش مطمئنه با فخر و خیاله هم میخونه رد میشه خب بکر صدیق آیه به آیه تک تک خودشو محاسبه میکنه امین آیه چه میگه خب بکر صدیق پیش نماز نشه له تقران میکنه زیاد قریب میکنه. خدا رسول الله زمان میفرماین در مرز وفاتشون صلی صل الله علیه وسلم مور او بکران یو صلی به الناس پیدا او نماز بکنه میگه امین آیه که او بکر پیش نماز نشه از بسک قریب میگه. چرا قریب میکرد به نظر شما؟ حساب و کتاب و میزان و ترازو و همه اینها در خوندن آیات قرآن جلوه چش خودش میدید؟ قافل نبود در اون تلاوتش در اون خشوعش میدونست فلاخت حمل عقبه و ما دراکم العقبه. قرراقبه او یا منلی مسقه ی ذا مقربه او مسکیند ذا میدونست که چی باید بکنه؟ چی الله داره میخواد؟ چرا باید بعددی آزاد بکنه چرا باید یتیمی کمک بکنه؟ چرا باید مسلمان یاری بده کمکش بکنه چرا؟ برای نجات اعذاب با الله علی میدونست این فرق ماها به اونست. اینمههاجرینه او باصدیق هم یکی از اونمههاجرین. لا يعني اونها از شما سقت نگرفن نمیتونم ب مادام یک شر داره. ما دعوتم الله لهم و اثنيتم عليهم به مادامی که شما دعای خیر میکنید در مقابل خوبی ها و یاد نیک از اونها میکنید اونها را می ستایید با هم جزاك الله خيرا گفتن جواب اون پاداششون رو برمیگردونید میرید با کمترین چیزم الانم دعا کردن هنی هنوز جا هست برای اینکه شما سبقت بگیرید شما میتونید سبقت بگیرید شما میتونید پیشتاز باشید در سبب خوبی با دعای خیر بر اونها کردن هر کسی بیشتر برای دیگری منفعت رسوند اون شخص پیشتاز در صحنه محشر هر کس احسانش به بی دیگری بیشتر بود اونها در حق تو خوبی کردن با خوبی کردن میخوان پیشتاز بشن تو هم جواب اون خوبی رو بده دعای خیر براش کن تا تو, تو هم پیشتاز بشی راه مسابقه را یاد میده و سبحان الله یکی از چیزهایی که سبب میشه انسان اون محبتش بین برادراش حفظ بشه دوست رفیق از بین بره و اون محبت پر رنگ بشه مثلا این جمع هستیم یک از چیزایی که سبب میشه محبت بین ما هم دیگر بیشتر بشه دعا در سجده است مثلا شما دارید امام احمد میگه برای امام شافعی در سجدم دعا میکنم میگه نمازی نخوندم مگه براش دعا کردم شیخشه استادشه هزاران شیخ داره اون کسی که در حقش حق بیشتری داره براش بیشتر دعا میکنه برای این شیخ برای اون اساتید این اساتیدی که بودن علما که بودن در حق هم دیگر اقران بودن در حق هم دیگر حالا غیر از خصوم جایی نیاز هست انسان در حق خصمش همون کسی که باهاش عداوت دشمنی داره دعا بکنه براش. برای که قلب خودش آروم بشه. برای قلب خودش دل خودش شب راحت بخوابه. همون کسی که باید خصومت داره براش دایی خیر کنه. الله خیر جلو روش بیاره الله اصلاحش بکنه. حمو سبب میشه که دست از خصومتشون طرف مقابل بر تو نمیدونی الله از قلبت با خبره دلها دست الله قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن میقلبوه کیف یشء الله هر تری و قلب رو عوض میکنه پس در این حدیث یک اشاره ای هست به حرص صحابه بر پیشتازی در عمل خیر و مسئله دیگر ترسشون از قیامت از اینکه اجرشون با کوتاهی کاسه بشه نمیخوان دری از درهای فضل و فضیلت و ثواب و پاداش از دست بدن خیلی براشون گروتام میشه اونها توفیق عمل صالحی پیدا بکنن اونها بتونن عمل نیکی رو انجام بدن این قبل بمونه پس بمونه میخواد هر عمل خیری هست رو انجام بده هر عملی که در حد توانش در اون روزش از صبح که از خواب پا میشه چی میخواد از صدقش باشه کمک به یتیم باشه هر عمل خیری که توانش میرسه نمیخواد دری از درهای خیر از ذک گفتن از احسان به همسر به خانواده به همسایه چنانچه در حدیث قبل داشتی. نمیخواستن که از سرس راهی برای کسب عجب باشه و اون توان انجام اون کار رو نداشته باشن سبحانه کالله بحمدک سبحان الله بحمد صلی اللہ علیه محمدین علیه محمد